قصهای هزار و یک شب شب 23ام چون از حسن بدرالدین خبری نرسید شمسالدین وزیر گفت کاری کنم که پیش از من کسی چنان کار نکرده باشد پس قلم و قرتاس گرفته آنچه که در هجله بود همه را یکی یک بنوشت که فلان چیز در فلان جا و چیز دیگر در فلان مکان است پس از آن ورقه فرو پیچید و فرمود که چیزهای اساس هجله خانه در صندوق نگاه دارند و خود دستار و ردای حسن بدردین را با بدایی زر نگاه داشت. و اما دختر وزیر را زمان آبستنی به انجام رسید. پسری چون قمر بزاد که به پدر خود حسن بدردین همیمان است. ناف او را ببریدند و سرمه به چشمان او بکشیدند و به دایگانش سپرده، او را عجیب نام نهادند چون هفت سال شد وزیر شمسدین او را به آموزگاری سپرد که در تربیت او بکوشد چهار سال در دبستان بود و با کودکان دبستان جنگ می کرد و ایشان را دشنام می و میگفت: شما با من چگونه برابری توانید کرد که من پسر وزیر مصرم؟ کودکان شکایت پیش استاد بردند استاد گفت من شما را سخنی بیاموزم که اگر آن سخن را به عجیب بگویید دیگر به دبستان نیاید و آن این است که چون عجیب بر وی جمع شوید و از هر سو حدیثی به میان آورید و در آن میان بگویید که هر که نام باب و مام خود نداند او حرام زاده است و در میان ما نباید نشست. پس چون بامداد شد، کودکان به دبستان آمدند و عجیب نیز حاضر شد. کودکان بر او گرد آمدند و از هر سو سخن راندند و گفتند در میان ما ننشیند مگر کسی که نام پدر و مادر بگوید. آنگاه یکی از ایشان گفت نام من ماجد و نام پدرم ازدین و نام مادرم نبیه است و دیگری گفت نام من نجیب و نام مادرم جمیله و نام پدرم مصطفیه است و دیگری نیز به همان سیاقت نام خود و نام پدر و نام مادر باز گفت تا آنکه نوبت به عجیب افتاد گفت مرا نام عجیب و نام مادر ست و نام پدرم شمس الدین است وزیر مصر. کودکان گفتند: «به خدا سوگند وزیر پدر تو نیست؟ عجیب گفت: «به خدا سوگند وزیر پدر من است. کودکان بر وی بخندیدند و گفتند چون نام پدر نمیدانی از میان ما به شو در حال کودکان از وی پراکنده گشته به او بخندیدند عجیب تنگ دل گشته گریستن آغاز کرد آموزگار با او گفت "مگر گمان می کردی که شمسدین تو را پدر است ای فرزند شمسدین پدر تو نیست پدر تو را نه ما می و نه تو از آنکه مادرت را سلطان مصر به سیاهی گوش پشت تزویج کرده بود و در شب عروسی جنیان با مادرتو تو عجیب چون این سخن بشنید، برخاسته گریان گریان شکایت به مادر برد و شدت گریستن از سخن گفتنش من می چون مادر گریستن او بدید، دلش بر وی سوخت. گفت: ای فرزند، از بهره چه گریانی؟ عجیب آنچه از کودکان و آموزگار شنیده بود با مادر باز گفت و نام پدر را پرسان گشت. ستالحوسن گفت پدر تو وزیر مصر است. عجیب گفت او پدر تو و جد من است. راستگو که پدر من کیست وگرنه خود را بکشم. چون ستالحوسن عجیب را دید که یاد پدر کرده او را نیز از پسر عم خود حسن بدرالدین یاد آمده بگریست و این ابیات برخاند رفتی و همچنان به خیال من اندری گویی که در برابر چشمم مصوری با دوست گنج فقر بهش و بوستان بیدوست دوست خاک بر سر گنج و توانگری تا دوست در کنار نباشد به کام دل از هیچ نعمتی نتوانی که برخری پس از آن بگریست و عجیب نیز همی گریست که شمسدین وزیر در آمد و گریستن ایشان بدید سبب گریستن باز پرسید ستالحوسن حکایت فرزند خود و کودکان دبستان را با پدر حدیث کرد را نیز پسر برادر به خاطر آمده محزون شد و بگریست. پس از آن برخاست نزد ملک شد و قصه برو فرو خواند و اجازت سفر بسر خواست که از برادرزاده خود جویان شود. و از ملک تمنا کرد که کتابی به این مضمون بنویسد که شمسالدین وزیر پسر برادر را در هر مکان بیابد او را دست گیر کند. آنگاه در پیش ملک بگریست ملک رادل بر وی بسوخت جواز سفر داد وزیر ملک را دعا گفته از قصر بدر شد و به سفر بسیجید و عجیب ران به همراه خیشتن برداشته روان شد و تا سه روز همی رفتند تا به شهر دمشق رسیدند وزیر دید که دمشق شهری شهریست سبز و خرم و درختان بسیار و نهرهای روان دارد. پس وزیر در میدان حسبا فرود آمد و خیمه ها بر پا نمود. وزیر خادمان را گفت دو روز در این مکان براسایید. آنگاه خادمان از بهر خرید و فروش و تفرج مساجد و گرمابه ها به شهر در آمدند و عجیب نیز با خادم خیش به شهر اندر شد و تفرج همی کرد مردمان شهر چون حسن و جمال و قد با اعتدال او بدیدند همگی چشم بر وی دوختند و از پی او در افتادند و او همی رفت تا اینکه به حکم تقدیر در برابر دکه پدرش حسن بدرالدین که تباخ او را به فرزندی برداشته بود ایستاد. حسن بدردین به سوی پسر نظر افکند و مهرش برو به جنبید. بیتابانه با او گفت ای خاجه چه شود که به دکان من در آیی و دل شکسته من به دست آورد تا می خوری؟ تفاوتی نکند قدر پادشاهی را گر التفات کند کمترین گدایی را. عجیب چون سخن پدر بشنید دلش بر او مایل گشت. روی به خادم آورده گفت: مرا دل بر این تباق بسوخت گویا که او از پسر خویش جدا گشته بیا تا خاطر محزون او به دست آورده از زیافت او بخوریم شاید که بدین سبب خدای تعالی مرا نیز به پدر خویش برساند. خادم گفت: ای خاج لایق وزیرزادگان نباشد که در دکیه تباخان تب تعام خورند. چون حسن بدردین من اخادم بدید رو به دو کرد گریان شد و لابه کرد و گفت ای مشک فام دل سپید چرا بر من رحمت نمی کنی و پاس خاطر من نمیداری؟ داری؟ آنگاه در ستایش قلامک سیاه این اپیات برخاند. سوخت روی تو همی گوید کوت در هیچ کار خام نی اختران سپید در خنده چون نمایی اگر ظلام نی گرچه خیری کبود بود روی تو عیب تو نیست زشت نام نی خادمک را ستایش او خوش آمد و دست عجیب را گرفته به دکان برد. حسن بدرالدین قزایی از انار پخته بود. در حال برخاسته، ظرفی از آن آورده، لوز و شکر بر وی بیامیخت و با عجیب گفت: بخور که تو را نوش باد. عجیب با پدر خود گفت: بنشین و با ما تعام بخور. شاید که خدای تعالی ما را به مقصود رساند و گمگشته ما را پدید آورد حسن بدرالدین گفت ای فرزند مگر تو نیز در این خردسالی سالی به جدایی دوستان گرفتاری؟ عجیب گفت آری جگرم از جدایی پدر داغدار و دلم از دوری اون ناشاد است با جد خیش در جستجوی او راه کوه و صحرا پیش گرفته، حیران همی گردیم. عجیب این بگفت و گریان شد و حسن بدرالدین و خادم از گریستن او بگریستند. پس از خوردن قضا عجیب برخاسته از دکان به در آمد. حسن دید که روانش از تن همی روید، و طاقت جدایی نیاورده دکان ببست و از پی ایشان روان شد خادم را بر وی نظر افتاد گفت ای خیر مرد چرا از پی ما روانی؟ حسن گفت مرا در خارج شهر مشغله هست از پی آن شغل همی روم. خادمک در خشم شد و با عجیب گفت این لغمه شوم بود خوردیم که اکنون تباخ در پی ما افتاده از مکانی به مکانی همی آید. عجیب روی به تباخ کرده خشمالودش بنگریست و با خادم گفت بگذار که از پی کار خیش رود هر وقت که ما به خیمه ها نزدیک شویم و او را در پی خیش ببینیم آنگاه او را برانیم و بیازاریم. حسن بدردین گفت تو خواهی آستی افشان و خواهی روی در همکش مگس جایی نخواهد رفت از دکان حلوایی. القصه عجیب با خادمک روان شد و حسن بر اثر ایشان همی رفت تا به خیمه ها نزدیک شدند آنگاه عجیب نگاه کرد حسن را در پی خود یافت خشمگین گشته سقطش گفت و سنگی گرفته بر جبینش زد حسن را جبین بشکست و بیخود افتاده خون از جبینش روان شد و عجیب با خادم به خیمه ها در آمدند. و اما حسن بدردین چون به خود آمد خون از رخ پاک کرد و پاره از دستار خود بریده بر جبین بست و خیشتن را ملامت کرده گفت که من به آن کودک ستم کردم و دکان بسته در پی او بیفتادم تا اینکه بر من گمان بد برد. پس حسن بدرالدین به سوی دکان بازگشت و از مادر خیش و شهر بسره یاد کرده بگریست و این دو بیت برخاند. نماز شام قریبان چه گریه آغاظم به مویه های قریبان قصه پردازم به یاد یار و دیاران چنان بگریم زار که از جهان ره و رسم سفر براندازم و اما شمسدین وزیر سه روز در دمشق بماند روز چهارم به سوی بسره روان شد چون به بسره رسید در منزلی فرود آمده براسود پس از آن نزد سلطان بسره شد سلطان حرمت او را بداشت و از سبب آمدنش باز پرسید وزیر قصه خود فرو خواند و به سلطان بنمود که علی نوردین نام برادری داشته سلطان چون نام نورالدین بشنید از برای او آمرزش طلبید و گفت ای وزیر او وزیر من بود من او را بسی دوست می داشتم دوازده سال پیش از این سپری شد پسری بر جای گذاشت و آن پسر ناپدید گشته خبر او به ما نرسید ولیکن مادر آن پسر که دختر وزیر نخستین من بود در نزد من است چون شمسدین از ملک شنید که مادر پسر برادرش زنده است فرهناک شد و گفت ای ملک اجازت ده که او را ببینم ملک دستوری داد شمسدین به سوی خانه برادر آمد و چشم بر در و دیوار خانه بیانداخت و عطبه او را ببوسید و برادرش نوردین را به خاطر آورد و از قربت او یاد کرده بگریست پس از آن به خانه اندر شد نام نورالدین را دید که به آب زر بر دیوارهای خانه نوشته اند آن نام نقش گشته نزدیک شده او را ببوسید و بگریست و این عبیات برخاند تا بر از من دور شد دل در برم رنجور شد، مشکم همه کافور شد، شمشاد من شد نسترن نتوان گذشت از منزلی کانجا بیفتد مشکلی، از قصه سنگین دلی نوشین لب و سیمین زقان پس از آن به مکانی که مادر حسن بدرالدین در آنجا بود برسید و مادر حسن از روزی که پسرش ناپدید شده بود صورت قبری ساخته شبان روز آن قبر همی گریست. چون شمس دین بدان مکان رسید در پشت دربی ایستاد و دید که مادر حسن گریان است و این دو بیت همی خاند. قررتل این منان میوه دل یادش باد که خداسان بشد و کار مرا مشکل کرد آه و فریاد که از چشم حسود و مه و مهر در لحد ماه مکانه روی من منزل کرد پس شمس دین داخل آن مکان شد مادر حسن را سلام کرده گفت برادر شوهر تو هستم پس از آن قصه بر وی فرو خواند و گفت حسن بدرالدین با دختر من شبی به روز آورده دخترم از وی پسری زاده است که اکنون آن پسر با من است چون مادر حسن خبر پسر بشنید و دانست که او زنده است برخواسته در پای برادر شوهر افتاد و بر دست او بوسه داد و این دو بیت برخاند. مجده ای دل که دگر باد سبا باز آمد خوش خوشخبر از طرف سبا باز آمد چشم من از پی این قافل بس آه کشید تا به گوش دلم آواز درا باز آمد. پس از آن وزیر فرمود، که عجیب پسر حسن بدردین را بیاوردند چون عجیب را حاضر آوردند جده او را در آغوش گرفته بگریست شمسدین گفت این نه وقت گریستن است بلکه باید ساز و برگ رهیل کنی و با ما به دیار مصر روان شوی امید است که خدای تعالی پراکندگی ما را جمع آورد مادر حسن در حال برخواسته زخیره ها و کنیزکان خود را جمع آورد و شمسدین نزد سلطان بسره شد او را بدا کرد و سلطان بسره هدیه ها به سوی ملک مصر فرستاد و همان روز وزیر با زن برادر خود روان شدند و همی رفتند تا به دمشق برسیدند و در آنجا فرود آمدند وزیر با خادمان گفت هفتهای در این شهر خواهیم بود تا ای لایق از برای سلطان مصر فراهم سازیم عجیب با خادمان گفت که تفرج را بسی شوقمندم برخیست تا به بازار دمشق رویم و ببینیم که آن تباخ که تعام او را خورده و جبینش را شکستیم چه ماجرا رفته خادم فرمان پذیرفت در حال عجیب و خادمک از خیمه ها به در آمدند و عجیب را مهر پدری به سوی طباخ خمی کشید تا به دکان طباخ برسیدند. حسن بدردین را دیدند که در دکان ایستاده است. اتفاقا حسن بدردین در آن روز نیز غذای انار پخته بود، چون عجیب را بر پدر نظر افتاد و اثر سنگ در جبین او بدید، مهرش به جنبید. او را سلام داده با او گفت، در این مدت مرا دل پیش تو بود. چون بدر الدین به سوی او نظر کرد، دلش تپیدن گرفت و سر به زیر رفت و خواست که با او سخن گوید، زبان را یارای سخن گفتن نبود. پس از زمانی سر بر کرده با فروتنی، این عبیات برخاند ای که با سلسله زلف دراز آمده ای فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای آب و آتش به آمیخته ای از لب و رخ چشم بد دور که خوش شعبد باز آمده ای آفرین بر دل نرم تو که از بحر سواب کشته قمزه خود را به نماز آمده ای پس از آن گفت چه شود که خاطر هزینم شادمان کنید و از تعام من بخورید و ای پسر به خدا سوگند من در پی تو نیافتادم مگر اینکه مرا خرد به زیان رفته بود عجیب گفت به خدا سوگند که تو دوستار من نیستی که در پی من افتادی و همین خواستی که مرا رسوا کنی اکنون طعام تو را نخواهم خورد مگر اینکه سوگند یاد کنی که از دکان بر نیایی و بر اثر ما روان نشوی وگرنه دیگر به سوی تو باز نگردم و ما هفتهای در این شهر مقیم هستیم بدردین سوگند ها یاد کرد پس عجیب و خادم به دکان در آمدند. بدردین ظرفی پر از انار دان کرده شکرامیخت پیش آورد. عجیب گفت تو نیز با ما بخور شاید خدای تعالی ما را فرجی عطا کند. بدردین فرهناک گشته با ایشان به خوردن نشست ولی چشم از روی عجیب بر نمی داشت. عجیب گفت اگر نه آشق منی چرا چشم از من بر مدردین گفت گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر این مهر برکه افکنم این دل کجا برم و این دو بیت نیز برخاند تو را می بینم و میلم زیادت می شود هردم مرا می بینی و هردم زیادت می کنی دردم ندارم دستت از دامن به جز در خاکدان غم چو بر خاکم گزاراری بگیرد دامنت دستم القصه بدرالدین گاهی لقمه به عجیب میداد و گاهی به خادمک تا اینکه سیر شدند آنگاه به آب گرم دست ایشان بشست و دستارچه حریر آورده دست ایشان پاک کرد و گلاب بر ایشان بیفشاند پس از آن دو ظرف شربت به گلاب آمیخت آورد و گفت احسان بر من تمام کنید و اینها را بنوشید عجیب و خادم آنها را بنوشیدند و بیش از عادت سیر شدند پس از آن از دکان به در آمده همین رفتند تا به خیمه ها برسیدند عجیب نزد جده خیش رفت جده او را در آغوش گرفته ببوسید و از پسر یاد کرده آهی برکشید و بگریست و این دو بیت برخاند. تا نزد منی ای فراق مسکن کردی احوال مرا به کام دشمن کردی. ای درد فراق یار اگر زنده بوم با وصل بگویم ان چه با من کردی. پس از آن با عجیب گفت ای فرزند کجا بودی؟ عجیب گفت در شهر دمشق بودم. در آن هنگام جد برخاست و ظرفی دانه انار که شیرینی آن کم بود پیش عجیب آورد و با خادم گفت بنشین و با خاجه خود قبل رمان بخور. خادم بنشست. عجیب لقمه برداشته شیرینی آن را کم یافت چون سیر بود از خوردن آن آزارده شد و گفت این چگونه است؟ جده گفت ای فرزند چون است که تعام مرا نمی پسندی و حال که حبرمان را کسی چون من نیکو نتواند پخت مگر پدر تو حسن بدردین عجیب گفت ای جده این تعام تو نیکو نبود ولیکن ما به شهرندر تباخی دیدیم که رایه رمان او به دلهای هزین فرح میبخشد و مردمان سیر به مخوردن آن میل میکردند و این تام را بر او نسبت نتوان داد. چون جده این سخن بشنید در خشم شد و به سوی خادم نظر کرده گفت که سبد اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است